ان الله موفق باشید ان الله موفق باشی الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويصرف علي كل أورث وأنا آسفي، ويعظم النعمة علي فلا أجزي. صلى الله على سيدنا ونبينا و نبيهنا المصطفى محمد صلى الله وعلى أهل بي الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضي. اللهم كل ما ليك على حجة ابن الحسن. صلواتك عليه يهلال أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وللجمع فضاء بقاو إذا ودليلا ودليل معينا حتى تسكنه أربعة طواع. و فيها تعوی ها عباد الله و نفرریب به الله همه شما عذرا و خودم را به تخوای سفارش می کنم بدانیم محل در محضر خدا هستیم اگر خدای نچ خطایی از ما صادر شود بلا فاصله اوزر خواهی کنیم از خدای متعال از کنیم پروردگارا شرمنده هستیم از بیعدبی که داشتیم در مقابل تو و دید تو ما اسیان چردیم فرمان تو را مخالفت چردیم سفارش من در تقباب این آیه است یا ایها الناس اتقوا ربکم این نظر زلط ساعت شیعون خداوند داون می مردم مراقب باشید گناه نکنید حریم اداهی رو حیث کنید بدانید قیامت روز سختیست این نظر زلط ساعت شیء عظیم قیامتی که تمام اعمال شما در طول عمر مجسم می شود و به شما برجه می شود از اعمال شما هیچ چیز هست نمیشه، همه میماند و به صورت جزای عمل به ما بر میگردد. مراقب باشیم مواظب باشیم این نظر نزلزلت ساعت شیء عظیم. سخن من اگر خاطر محترمتون باشد در زمینه معاد بحثی رو شروع کردم البته به مناسبت خواهی سخن رو تغییر دادم و در باره اون موضوع سخن گفتم اما امروز باز بر جردم به همون بحث قبلیش بحث. معاد هست من چند نکته رو از کنم نکته اول که مهمترین هست، کسی از ما سوال کند سخت ترین چیزی که در قیامت هست چی هست؟ از سخت ترین سوال کند فکر کنم عجب جواب بدیم سخت ترین زدن است. مستخصرین برنامه رو ظالم دارد جواب درست داده این خداوند به عزت و جلالش قسم خورده از ظلم ظالم نگذرد از حق مظلوم نگذرد من در این مورد قایه شریفه رو براتون میخونم اِنَّا عَرَبْنَ ازواات و اری و الجبال نه بار اما ما به دوش انسان گذاشتیم و دو خطر او رو تهدید میکند یکی ظلم دیگری جاحده. ببین ظلم یکی از دو خطری است که متوجه به انسان می شود در قیامت. این ظلم و این چه خداوند از حق از ظلم ظالم دو بخش دارد یکی این چه خداوند ظالم رو به اشد مجازات مجازات میکند اما تنها مساله این نیست بخش دوم اینکه خداوند حق مظلوم را از ظالم میگیرد و به او میدهد این نشی ظالم در آتش جهنم برای عبد بسوزد کافی نیست حق مظلوم چی شده ظالم چه حق مظلوم رو زایه اچرده خدا با او چه بی کند در مورد ظالم خب آیات شدت عذاب کم نیست یعنی آیات کم نیست در اون آیات شریف سوره و الفجر چه بایده دکت دو الارو دوبه کندکا و جا رب که ملاک است و نصف و جی یوم الإنسان و ناله يقول یا قول یا لیت قدمت لحیاتی فیوم لا یعد بعذامه و احد فلا یوسط مطاقه حکم و فرمان خدا هم صادر می شود جهنم رو هم می آوریم در صحنه قیامت جهنم که بیدار هست جهنم که زنده هست جهنم که وقتی نگاهش به گناهکار می افتد فریاد میکشد و با فریادش به او میگوید گوید تو تونه من خواهی شد از دا دور از کم مکان بعید سم او ده ها شقیقاً وحیتا این جهنم در انتظار گناهکاران به ویژه زادمین استام دیارن هست. اما مظلومی که باید حقش برسد این قابل توجه ابداً ان الله از ظالمها را از کنم یکی ظلم به جانم یه چی رو می می پشم ظلم شده پشته شده خونش ریخته شده جراحتی به شبارد می زلمه. این یه نوع دوبام ظلمه آبروست آبروی انسان ها رو آدمی اگر آسیب برسونه این زلمه. حالا چه در حضورش چه در غیابش در غیابش هم اگر انسان چیزی بیگه آب روی طرف رو آسیب بزنه این اسمش قیبته و این ظلمه این آدمی که قائب بوده و در مورد او سخن گفتن مظلوم واقع شده و صرف ما اموال کسی رو انسان غارت کنه اموال شخصی رو غارت کنه بیت المال رو غارت کنه بیت المال اینجور نیست که صاحب نداشته باشه چرا؟ هر درهم بیت المال صاحبش حدود 80 میلیون انسان هست چه اجر به ناحق از بیت المال سوء استفاده کند ظلم به هشساد میلیون کرده مظلوم رو برگردونه از ظالم بگیره چجور میگیره در قیامت ظالم که چیزی نداره چه از او خدا بگیره و به طرف بده چرا داره ممکنه در نامه عملش کارهای خوبی باشه در عمرش کارهای خوبی کرده خداوند از کارهای خوب او بر می داره و به مظلوم میده دقت می‌فرمایید این مسئله در مورد دو فرزند آدم خداوند می‌فرمازد و علیهم نبات آدم بالحق اذ قربا قربان فتقبل من احدهم ما ولن يتقبل من الآخر دو فرزند آدم هابیل و قبیل اینها مأمور شدند یک قربانی به درگاه خدا اهدا کنند یکی گوسفند خوبی داشت قابیل بهترین گوسفند رو انتخاب کرد و ذبح و قربانی کرد دیگری چه قابل بود زارع بود از های کم ارزشش یه مقداری اختصاص داد برای قربانی قربانی هابیل قبول شد قربانی هابیل رد شد هابیل مورد حسد قرار گرفت هابیل به هابیل گفت من تو رو میکشم. قال لعقتلن مک هابیل گفت لعن بسطه الی یدکل تقتلنیم ما انا به باسطن ید یا الی کل اگر تو تصمیم بگیری مرو بکشیم من اقدام به کشتن تو نمیکنم کنم اینی اخاف الله رب العالمین من از خدا می ترسم اینی قرید و ابو به اسمی و اسمی فتکونم من اصحاب نار عرض من اینه حابیل به قابیل گفت من میخوام در به واسطه کشتن من که تو من رو تمام گناهان من به گردن تو بیفته رید و انتبو عبد افمی و افمک فتکونم من از قابل من من بشم و تمام گناهانی که من دارم بیفته به گردن تو ببینید اینه یعنی در یه مرحله اگر ظالم عبادتی داشته تمام عباداتش یا به اندازه ظلمش عبادات میره به ادرامه عمل مظلوم و اگر تمام هم شد از گناهان مظلوم منتقل می شود به باشیم این هم در مورد ظلم به جانه هم در مورد ظلم به آب و و هم در مورد ظلم به مال هست شما حتما زیاد شنیدید این روایات رو چه در قیامت نامه اعمال عبادری که دستشون میدن بعضی ها نگاه به نامه عمل میکنن میبینن گناهانی می در این نامه عمل هست که انجام ندادن مثلا میگه من دامنم که آلوده به گناه نشده ما در این نامه آمده ده مرتبه من زنا کردم من چه زنا کردم؟ یا من مثلا چه شرب خمر کردم؟ ولی در این نامه ای عمل هست از می خدا خدای نامه عمل من اشتباهی است. خطاب می شود نامه عمل خودت هست و دستگاه ما اشتباه نیست خب این گناهانی ای که تو نکردی راست هم میگی گی اما در نامه عمل سبت به دلیل همین غیبت کردی از افرادی ما مقداری از گناهان اونها رو در نامه عملش ثبت شد اینجوریه و هاش ازا در مورد دومی و سومی که میگن خدایا این نامه عمل ما نیست خیلی از عبادات در این نامه هست ما انجام ندادیم من اصلا حج نرفتم اما حالا در نامه عمل من هست پنج بحثله حج برای نامه عمل من این نیست خطاب می شود همینه نامه عمل تو همینه فلانی از تو غیبت ها کرد ما حج او رو به تو حساب تو آوردیم به تو دادیم ما برادران عزیز نظام هستی خیلی دقیقه بسیار دقیقه جزا عمل و حساب در قیامت بسیار دقیقه مراقب باشیم نبادا اعمالمون رو با غیبت ها با تهمت ها با فحش ها با استهزا ها با خوردن مال مرزوم مال شخصی مرزوم مال بیت و یا آسیب به جان افراد عبادتاش انجام دادیم همه رو برباد بدیم مباد این اتفاق بیفته مبادا کارهای خیر ما برباد بره منتقل بشه به دیگری این یکی از مسائل حتمی و است در نظام آفرینش خداوند همه ما را بیدار کند مخصوصاً آنان که میتونن از بیت الماس تو استفاده کنند می ها پول پولهای چلانی از بانک بگیرن من حتی شنیدم رقم هزار میلیاردی شوخی نداره هزار میلیارد تومان از بانک میگیره و در مقابل چیزیم که بانک دستش باشه نمیده و بعدن هم یا فرار میکنه از کشور یا مخفی میشه این پول ها پول های مردمه این بیشاره هایی که داد میزنن و میگن بابا پول رو ما گذاشتیم در بانک چرا پول مونو نمیدید اینا خوردن اینا بلیدن اینها بردن باید اینا جواب بدن والله قیامتی هست هواستون جمع باشه در قیامت نمیتونید جواب بدید تمام عباداتی اگر داشتید برباد میره منتقل میشه و گناهان هشتاد میلیون انسان به گردن شما خواهد بود <تصفيق> یا به محمد و آل محمد همه ما را از خواب غفلت بیدار کن بیخود نیست این قدر راجعه به قیامت سخن در قرآن آمده و بالاخره هم یوقنون قیامت در جلو چشم ما باشد عبور از صلات در مقابل چشم ما باشد این سخنی که من عرض کردم در ذهن شما باشد در ذهن ما باشد عباداتمون رو برباد ندیم با تجاوز به آبروی مردم تجاوز به جان مردم تجاوز به مال مردم تمام اینها ظلم است و قرآآن فرمود ان ربك لبالمرصاد خدا در چمین ظالمین است بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا معددا يحسبون ان ماله هو اخلده خلولا يوم في طنما وما ادرا ما من نار الله الموقده التي تطلع على الاقداء إنها عليه مؤسدا فی عمد ممجدده السلام علیکم از الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الاسباح بالجلال والإترام وصلا الله علی سیدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد لبيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وشبيك وصل على علي امیر المؤمنين ووصی رسول رب العالمين صل على الصدیقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين صل على سطح الرحمة وإمام الحضار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 دل مکر جهبا سرخ نصرم عزیزا له فتحا یسیر و من عوانه و امصاره والباب دینا اوسی عباد الله من نبسی الله تقوالله الله باز شما و خودم را به سفارش میکنم قرآن می فرمد تا می تونید رو مراعات کنید اتقال الله کن هرچه توان دارید توانتون را مصروف تهیه تقوا کنید متقی باشید پاچ باشید خود رو به گناه آدوده نکنید گناه خطری است گناه انسانیت انسان روزایه می کند گناه انسان را از حد حیوانات هم خاینتر می آبرد. حتی از حد یک حیوان نجسل این هم خاینتر می آبرد سج حیوان نجسل اینیست اگر هنری داشته باشد سید بلد باشد حفاظت باغ رو بلد باشد قیمت داره اگر کسی این سج رو بزنه بکشه باید دیه بده به صاحبش بده اما گناهکار به واسطه گناه به حدی میرسد. غصده چه نه تنها وجودش ارزشی ندارد بلکه میره زیر صفر باید او رو کشت این جانی را این قاتل را به جرم جنایتش به جرم قتلش باید کشت خونش بی عرضشی. مراقب باشیم گناه نکنیم گناهان رو بشناسیم و خود رو از گناه حفظ کنیم مناسبت های زیادی هست که من به بعضی از آنها اشاره می کنم البته ناشار هستم که متذکر بشوم، اما به دلیل کمی وقت نمی تونم وارد شوم باید به صورت فهرست به مطلب بتردازنم روز ششم دی که بر ما گذشت دو روز قبل روز بلادت حضرت امام حسن اسکری صلوات الله و سلامه و علیه و امروز که روز هشتمه دی هست وقفات حضرت معصومه سلام الله علیه است و دیروز هفتم دی با روز تقریبه نهزت سواداموزی است و همچنین در این ایام ولادت پیغمبر اول حضرت عیسی مسیح سلام الله سلام الله علیه را داریم که من اون ولادت را و این وفات را به امت اسلامی خاصه به شیعان تبریک و اصلیت عرض می کنند. روز پنجم دی ماه دو سه روز قبل رو نامش روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلای بلایای طبیعی است عجب این روز با وضع امروز ما چقدر متناسب هست مردم ما روزهای تلخی را به مناسبت زلزله و هوای آلوده در این ایام پشت سر گذاشتند. اما مسئله زلزله این زلزله های متعدد و پیدر پی واقعا فاجعه هست دو مطلب رو می کنم یکی این که ظاهر بین میگوید این یکی از عوارض زمین و از کنم که اون خلاهای داخل زمین و بالاخره خارج شدن گازها و بخارها و اینهاست ما این رو قبول داریم اما تمام این حواضس ظاهری یک علت اصلی معنوی هم دارد توجه کنید اگر در زمین زلزله اتفاق میفتد این گناهان روی زمین هست که زمین رو میلرزاند خداوند برای بندگانش غیر از خیر هیچی نمیخواد. اما خودش فرموده اگر کاری بکنید چه خوب یا بد به خودتون برمیگرده. من باز سکرار میکنم، این گناهانی که روی زمین اتفاق می زمین رو میلرزاند این دامنهای آلوده این تجاوز حرام این خوردن به ناحق بیت المال، این تصرفات غلطی که در اموال عمومی می شود از سوء استفاده ها این دروغ ها این احانت ها این غفلت ها این توجهی ها به مسئله مردم که بار مسئولین بسیار سنگین است و بیتوجهی به حال محرومین گناه بزرگی است این رواج در ربا در بانکه ها اینا که زمین و میلرزونه بر رحم کنیم گناه نکنیم لرزه زمین تمام میشه. خدا می ان الله لا یغیر ما بقوم قومه حتی یغیر ما به اذا تغییری در وضع مردم به وجود بیاد به دلیل این هست که خود در اون خودشون تغییر ایجاد میشه فرمود که لو ان أهل القرى امنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اگر مردم پاک باشند تقوا داشته باشند برکاتی از زمین و آسمان به روی اونها، گشوده میشه خدا برای مردم غیر از خوبی هیچی نمیخواد اگر مردم خوب باشن زندگیشون در دنیا هم بهشت میشه بله اگر گناه بکنن اگر ظلم بکنن اگر ستم بکنن اگر آبروی یکی رو ببرن احترام یکی جر رو مرات نکنن بل یکی رحم نکنن قبیه بر ضعیف رحم نکنه مسئول به وظیفه مسئولیتش عمل نکنه اون به زمین می درزه اوامل طبیعیست زمین اما ریشه در اون اوامل معنوی دارد یه سلابات قطعه میکنم مطلب دیگر این که در خیلی از کشورها مشکل زلزله رو حل کردن جاپون مرتب می اما آسیبی نمی به مردم خوب چرا این تکنولوژی رو ما نمی گیریم اگر نداریم از اونها چی در دستشون هست به هر قیمتی هست بگیریم به آخر یک تکنولوژی دارن که به باسطه اون خطرات رو یا در حد صف رسندن خطرات زلزله رو یا کم کردن به هر قیمتی چه هست این تکنولوژی رو ما به دست بیاریم ولو به قیمتی این باشه که اینهایی که حقوقهای چنین اینو چنان دارن حقوقشون بیاد پایین مردم حفظ بشن کشور حفظ بشه یخوادی کمتر حقوق بگیرن 17 میلیون بشه 12 میلیون و این پول تکنولوژی که میتونه جلو بزرگه رو بگیره بخریم چرا این کار رو نمی کنیم مسئله دوبام مسئله هوای آلوده واقعا هوای آلوده یک فاجعه بود و هنوز هم متاسفانه هست این هوای آلوده عد ای رو بیمار کرده عد ای رو به مرگ کشوننده مردم از شهرهای آلوده فرال کردند. این سخان چه بعضی میگویند که در بهلی و مکزسیتی و پچن و مثل ماست این چه افتخار نشد که شما هم کشورتون باشه مانند به اونها نه افتخار است و نه قدر مبجه هست تازه در همین پچنی که اسمی برند در همین چین من صبق اطلاعاتی که به دست آوردم اطلاعات مبسق در هر محله دستگاههایی به نام برج های تصویه هوا گذاشتن هوای آلوده رو میگیرند هوای سالم رو وارد میکنن ذراتی را كه گرفتند تبدیل به محصولات ارزشمند میکنن این شینه این شین کشور الهادی است این هنرش در هر ساعت سی هزار متر مکعب می کند در سال 2008 میلادی در برج هشتم سال قرار بود المپیک در چین برگزار بشه. خوب دقت کنید چرا اینها رو ما یاد نمیگیریم؟ از اول سال هفته یک بار باران مصنوعی داشتن باران مصنوعی روزهای جمعه بود چرا جمعه برای اینکه یک شنبه که مردم تأثیر هستند، یه هوای قشنگی داشته باشن روزهای یک شنبه هوای تمیزی داشته باشن نزدیک به برنامه المپیک، نزدیک به برج هشتم سال 2008 یک روز در میان این باران بود. یک روز در میان هوا تمیز میشد، تمیزه تمیز. بله درست ما در صنعت عقب هستیم. به دلیل مظالم شاهان به ویژه پهلوی پدر و پسر. ولی بالاخره چهل سال هست که انقلاب تدبیم ما چهر سال وقت کمی نیست قرآن میگوید ما می شما الگو باشید شما ملت مسلمان شما ملت شیعه شما کشور اسلامی allah بیگانه کفار اولگش شدند و ما که داریم کل نام کم امتان وسط و شو حداق ادم تازه چین، هد کردم که نسانها برای این مسئله فضای آلوده بلکه برای دقت کنان مسئولین. بلکه برای فضای آلوده مجازی هم فکر کردند فیلتر قرار دادند که هیچ فکری که مخالف نظام آنهاست وارد مغز مردم نشه مردم چین تمام اونچه مردم از فضا در فضای مجازی می‌بینن چیزهایی باشه که خودشون خود اون کشور میپسنده، فرهنگ خودش هم هوا رو تصویر کرده هم فضای مجازی رو تصفیه کرده ولی شما ببینید این فضای مجازی مقام معظم رهبری همین چند روز قبل در مورد این فضای مجازی چی گفتن ایشون فرمودن امروز این عبارتشون امروز در فضای مجازی هزاران توب در حال شلیک به سمت ملت ایران است. حالا که وضع این حرف شد که ما بگوییم ما آزاد باید بگذاریم همه رو فیلترم نگذاریم. هر حرف غلط، هر سخن غلط، هر فکر مسموم اجازه بدیم وارد مغزها بشه این چه تصادفی هست؟ خدا انشاءالله مسئولین ما رو از خواب بیدار کنه. سخنی هم به ترامپ بگیم الحمدلله به نظر من ترامپ در حال سقوط هست اولا این آقا تعادل فکری عادل روانی نداره و مخصوصا این حرکت اخیرش اقدام نمگین و مفتدانهش در مورد قدس شریف که فریاد سازمان ملل رو هم بلند کرد و سازمان ملل هم او رو محکوم کرد علاوه بر آنکه که متحدانش در اروپا و سایر کشورها اینشنین کردند. و اینک هم که قصد خانه خدا را چرده به جنگ خدا آمده آقای ترام خیلی خوابی نه خیلی احمقی به حماقت مسئولین قبلی آمریکا اعتراف کرد تعبیرش اینه میگه احمقانه هفت تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کردیم و این جمله رو با انتقاد از سیاست داخلی و خارجی دولت‌های قبلی گفت هفت تریلیون کم نیست هفت تریلیون دلار به ناهق کردند که ضربه بزنن به بشریت ضربه بزنن به اسلام ضربه بزنن به ایران ضربه بزنن به آزادی خواهان نتونستن هیچ غلطی نتونستن بکنن اما من به آقای ترامت میگم خوب هست خودت هم دیگه بیدار بشید و یه قد فکر کنی بدونی خودت هم احمقی و مرتب کارهای احمقانه میکنی همین مسئله این عزم و ای که تصمیم که در مورد خود گرفتید بیشتر فکر کن این خود صاحب داره صاحب این خانه خداست از به کعبه پاس ضربه بزند نابود شد یزید در پایان عمرش منجنیق بس به کوههای اطراف کعبه منجنیق گداشت به قصد این که رو سنجباران بکنه هنوز سنجباران شروع نشده بود خبر آمد که یزید به درک رفت اون سرنوشت ابراهیم. این سرنوشت یزید حالا آره تو هم تصمیم گرفتی در مورد قبله مسلمین اولین قبله مسلمین این کار رو برداری مطمئن باش که نابود خواهید شد سخنی از یمن مظلوم بگم این یمن مظلوم این یمن مظلوم سلیب سرخ و حشدار داده میگوید یمن از گرستنگی در حال مرگ است این سخن صلیب سرخه میگه از هر ده نفر که در یمن هستن شش نفرن که به سختی میتونن یه چیزی برای خوردن پیدا کنن عرب سان سعودی تویی که حرمین دفر فرد قرآن کردی تویی که دم از اسلام و قرآن میزنی حیاتون خوندیدی بسه آدم کشی بسه یقدی در خود تجدید نظر کن فکر کن واقعا تو مسلمان هستی تو مسلمانی که اینقدر مسلمان رو میکشی <تصفيق> سوم میفرماد من سمع رجلا ینادی یا ل لمسلمین فلیس اگر کسی ببیند یه نفر یه نفر داد میزنه میگه مسلمونا به داد برسید و به دادش نرسند کسی که ناله این مظلوم رو میشنود مسلمان نیست حالا بیا تماشا کن همام خون بهراهنداغت این عربستان مدعی اسرامیت و داری اینطور جنایت میکنه و آمریکا و اسرائیل و اینها هم دارن حمایتش میکنن میخواستم یه جمله در رابطه با اظهارات گستاخانه و سخنان سخیف وزیر خارجه بهرین بگویم و جسارتی که به ایران اسلامی کرد اما به نظرم آمد او حقیرتر و پستر از آن است که در تریبون مقدس نماز جمعه اسم ننج او برده شود جواب عب ابلهان دادن خموشیست گر گربست آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نخواهد و اما آخرین سخنم در مورد نه دیگه هست که خوش وقتانه برادر عزیز گرم قدرم سخنان مفصلی در این زمینه داشتند و کاملا مسئله را رو روشن کردند و نقطه هایی که میباس بیان بکنند ایشون بیان کردند اما یه جمله بگم و اون جمله این است که چها چه که چه نچردم یک حرچتی به وجود آوردند و در این حرکت چه اتفاقاتی که نیفتاد چقدر به ماه رمضان بی احترامی شد روزه خاری انجام گرفت بتنسال مبارک امام اهانت شد از همه بالاتر به آشورا اهانت شد به خون مقدس امام حسین اهانت شد خوب بود حیامی میکردید یهودی و نصرانی در اربعین شرکت میکند و برای ازای امام حسین احترام خائل است اما شما در ایران اسلامی چه کردید؟ چه جنایاتی کردید؟ خدا اگر از شما بگذرد از اهانتی که به خون مقدس امام حسین در روز آشورا كردید نخواهد گذشت شما شما کور بودید شما چر بودید ندیدید آمریکا داره تشبیق میکنه مردم رو میگه بریزید تو خیابونها ندیدید دشمن شما دشمن ایران داره از کار شما تشبیق میکنه اسرائیل داره تشبیق میکنه اگر واقعا مدعی هستید که اینها مربوط به ما نیست چرا خودتونه چناب نکشیدید بگید ما نیستیم چناب نکشیدید تشبیق هم چردید مردم را هم به حضور دعوت شدید زبه که شما به ایران زدید و به اسلام و انقلاب اسلامی زدید چمتر نمونه ای در تاریخ ما داره الاخره اجر نمیدونم خدا از شما بگذرد مردم که از شما نمیگذرند خدا هم فکر نکنم از شما بگذرد خدابند انشاء الله این کشور رو از خطر شما و امثال شما حفظ کند آه، آه آه. که به الله هم حفظ کرده است بسم الله الرحمن الرحیم اداجا انصر الله و الفتح.